اجره های روب محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همهتن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخا دست برآورده به محتاب شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شب از آن رستم از هفت خان بودشت و این شب ما میخواییم رمزهای آن را پشکافیم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پنجره‌های رو به مهتاب میهمان عزیز امشب ما مثل هر یک شب آقای دکتر فریدون جنیدی هستند که درباره شاهنامه فردوسی صحبت میکنند من از امروز آقای دکتر جنیدی سلام علیکم حال شما خوش باشید خسته نباشید من اینو داشتم میگم آخره مانده نباشی در مده من امروز از بعد از ظهر به ماه نگاه می‌کردم خب ما چندوم ماهه؟ فکر می کنم اگر اشتباه نکنم ما قرص کامل نبوده. یا چندوم ماهه؟ یا بیستو اه... هشتون باید باشه. درست میگم؟ با. چندوم؟ هشتون افول میکنه. افول میکنه. بس میشه چندوم؟ شف شب بد دهمه. دهمه. امشب شب بد ده دهمه. ده خب؟ ده پس یه نمره کم. بازم. من. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> در این برنامه اگر موجود برنامه و پیشنهاد هندی برنامه به ماهتاب و به دهش ایزت در آسمان نگاه نکنه ما نمیتونیم از جوانان ایران خواهش کنیم که هر شب به این دهش زیبای خداوند در پهنه آسمان بنگرند من به همین خاطر نگا میگم واقعا <تصفح> تخیل نداشتم که ببینم چقدر میدونم کامل الان ما یک شب دیگه دو شب دیگه بگذرونه بکنم ماه کامل بشه درست <تصفح> میگم شب دیگه چهار شب دیگه آن ام روز میگی ماه شب که میاد خب بازم نگم تا اینشالله محفظ باشید کل لطف کردید آقای دکتر رو بودید همینطور شما شرمنده ها از این که برنامه ما رو میشنوید ممنونیم و انشالله این... شما هم نمره های خوب بگیرید از آقای دکتر جنیدی با پرسش های خوبی که مطرح میکنید و خوب شنیدن برنامه این اول برنامه رو خوب میشنوید و پرسش های خوب مطرح میکنید ما تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض کنم که شما با ما تماس بگیرید از طریق این تلفن‌ها انشالله آقای دکتر خلیل جنیدی تا اونجایی که بتوانیم و از بحث برنامه دور نشیم به تلفن‌های شما پاسخ خواهند داد و زمان باشه زمان باشه بل با همین خاطر من بخواهند. البته آقای دکتر جنیدی اصرار زیاد دارند که حتما به پاسخ, پاسخ به سوالات شما گفته بشه اما تا که بحث هم نخوره و بتونیم ادامه بدیم و زمان اجازه بده این کار رو انجام خواهیم داد ارز میکنم برای شما تلفون های برنامه 220, 4185. 220, 4185. 220, 58 800. 220 58 800. و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج بیست پنجاه و هشت و بیست پنجاه و هشت و شماره پیامک ما سی هزار پانصد و و هشت هست سی هزار پانسد و پنجا و شمارم میخوانیم و با حصف چند شماره از اون شماره های شمارم اعلام میکنیم شماره های پیامکتون دون اگر اسمم داشته باشید که اسمتونم اعلام کنیم. پس خوب میشنویم و خوب سؤال میکنیم از دین شروع کنیم چون اگر به خاطر داشته باشید که من از قبل بر تاریخ ابن اسفندیار تاریخ تبرستان ابن اسفندیار فقط دو بار دوین با دوبین اومده و بعد این دوین با مثال که آوردم تبدیل شده به دین و مقدار زیادی جاهایی که تبایی هست که نام دین دارند در مازندران یعنی تبرستان موجود هست و اشاره کردم که یکی از یاران ج... بعد از اینکه من سخنرانی سخنان کردم ایشون سی و اندیز روستای تپی دین پیدا کرده بودن بله. و که من گفتم در داستان ایران اینو خواهد بعدا دو نفر از فرزندان بنیادی نشابور در پریورش های آقای دکتر سسوده که از بزرگان تبرستان هست حتما شما ایشون رو میشونیم دکتر منوکیر سفرده ایشون سالها پیش واجه های دین رو پیدا کردن خوشبختانه دوین هم در نوشته ایشون هست حالا من این تا رو میخونم تا کسانی که در تبرستان هستن ببینن که این نام ها هست و در حقیقت نام, نام دوین و نام دین فراموش نشده از حافظی تاریخی تبرستان بند. فراموش نشده حالا کتردین کنار جاده اصلی بابل به بابل سر دین سر نزدیک بقیه کریم،, کریم و رحیم در عرضی مغرکلای پازبار بابل سر بند. دین سر در میان دسته جلال از بابل سر دین سر باز نزدیک دکده جارکلای تونوبی جلال بابل دین چارزار در دهکده اصبولای لال آباد بابول. دین سر باز در دهکده سلطان محمد طاهر از دهکده های بیش سر بابول. باز دین سر در پایین محله بیشه بابل. باز دین سر از دکده های هفگانه از تالار, تالار پی شاهی. دین سر از دهکده های فریم بخش مکرزی شهرستان ساری. مرندین. مرمدین تپه تپه این از ولاشت از دکتهای حومه ساری خوشبختانه نام دوین در تبرستان فراموش نشده دوین در صفحات و و ترکیب نام های جغرافی های دیده می شود که از جمله لومنی دوین توده قصر توس در توسان ساری دلید. بعد الله دوین از دهکده های رستاق از سراباد. بعد کافر دوین از دهکده های فخر اموددین از رستاق بعد سنگ دوین از دهکده های فخر اموددین از سراباد باز دومشتر سنگ دوین نام قدیمی دهکده نوزد سلطان دوین به صورت دون هم اومده دیگه من نمیخوایم ادامن بدم بل بل. این منو خیلی بر حقت شادمان کرد که می بینیم که در تبرستان این نامها هنوز باقی مونده هم به صورت دو دوین هم به صورت دین هم به صورت دون و حافظه تاریخی مردم تبرستان به ما یاری می‌کنه که ما ببینیم دوین یعنی بلندی و ماز هم یعنی چین شکن و نباید وقتی که ایرانیان رفتن و از چین شکنها گذاشتند و از دوین ها بلندترین دوین که دیل سفید بود با ایرانیان مبارزه کرد چون من تکرار می کنم اتبالا بعضیا هستن که بار, بار اول میشن اگر دوین به دو منی کوه باشه بزرگترین با بلندترین کوه کوه سس جباللبز چی هست تمامد بل و چرا دیو سفید برای اینکه هموار بربرش هست و مبارزه کوه با ایرانیان کرد عبارت از از یک آاتشفشانی مجدد شده شب آمده که عبر شد تا به ما جهان گشت چون روی زنگی سیا ز... گردون بسی سنگ بارید و خشت پراکنده گشتند ایران بدشت این نشون میده که مبارزه دوین یعنی دماغنده که سفید رنگ هست و در حقیقت ایرانیان اونجا آزار و آسیب دیدن نه. چون آزار و آسیب دیدن اما بعد باز هنوز کابوس هست یعنی ستله کاسیان و نه. کاسپا هستن بنابراین داستان پیش میاد که باعث قهرمان اینا رو نجات داده باشه این قهرمان کیه رستم و اون از هفت خان گذشت یعنی یک قهرمان بزرگ ایرانی از هفت خان بگذره از دیو و جادو تاریکی و کشتی و گورس تا تو مرحله بالا و این رستم قهرمان هست خب حالا ما میرسیم اینجا که ببینیم که مبارزه که رستم و کاووس با پادشاه مازندران میکنن چی هست؟ و این شگفتی اینجا در حقیقت چکفته میشه میخونن بخن. سرافرده شهری ها رو سران کشیدن پر دشت مازندران بعد از اینکه کابوس و پهنوانان ایران راههایی پیدا کردن از چنگ دیوی سفی حالا جنگ میخواد آغاز بشه آغاز جنگ ببینیم با چیه و چگونه چی خواهد بود بفرد شورای رعد شد بوغ و کوس خورند در پس پرده آب نو گرد برن شد و سیاه شد تاریک شد و پرده ابنوس و خورشید پشت این پرده قرار گرفت از آن سو که بود شاه مازندران بشد پیلتن با سپاهی گران شد از جادوی تنش یک لخت کو رستن به طرف شاه مازندران رفت او جادو کرد و تنش یک لخت کو شد ببینید بازمارده از کوه سخت مید. سخن میشه بل. از ایران بروبر نظاره گروه یعنی ایرانیان نگاه میکردن به این کو تهمتن فرومان اندرشگیفت سنامدار نیزه به دندان گرفت پهلوانان و پادشاهان بزرگ خودشون نیزه رو حمله میکردن چون نیزه بنده دو بود یعنی دو متر و شونزه سانت و پهلوان یا پادشاه نیزه رو حمله میکرد کسانی بودن که این نیزه رو براش پشت سرش می آوردن اگر نگارهای تخزیمشی نگاه کنیم پشت سر پادرشی کسی از نیزه دستشه اون نیزه داره و از جمله داریوش نیزه دار کمبوجیه بود که بعدا علیه او کودتا کرد بعد اینجا میگه سناندار نیزه به دندان گرفت اینه از, از شدت شگفتی چون ما الان هم میبینیم که اگر خیلی شگفت‌زده بشیم دندون خودم رو یعنی ناخون خودم رو به دند اما اون سر نیزه دستش بود و دمزان گرفینی چه گفتده شد که شاه مازندران یک کوه هست رسید اندر اونیز کابوس شاه اوا پیل و کوس و درفش و چه این گفت که سر فراز چه بودت که ای در به بماندی دراز یعنی چی شد که اینقدر اینجا معطل شدی به دو گفت رستم که چون رزم سخت بود و بیافروخت پیروز بخت یعنی بخت پیروز ما اف... افروخته شد بر این گونه خارا یکی کوه گشت از این روشندتر دیگه نمیشه گفت بر این گونه خارا یکی کوه گشت جنگ و زمردی بیاندوه گشت خب این نخستین مرحله از مبارزه که کوهای مازندران ولی با سرستن و با سفرهای نیاده میکنند دل. مرحله بعدیش و دو گفت در حالی که پیدا شدی یعنی به پادشاه ها که به صورت کوه در اومده گفت اگر شنان که خودتو آشکار بکنی بگردی از این تنبل و جادوی یعنی جادویی که کردی دگرگون کنی اگر به گرز و به تیغ و تبر ببرن همه سنگ را سر به سر خب اگر بخون که از این سنگ های کوه ها بگذارن و راه بسازند باید چکار کن. با سنگ رو ببر خرابش کنه خراب کنن سنگ رو راه درست کنن چوبش نید شد چون یکی پاره ابر به سر برش پولاد و بر تنش گبر ب... وقتی که راه رو دارن میکشن به طرف گستان ها شگفتی دوم و سختی دوم عبره عبره که هموارد داخل جنگلا هست و مقرار رو مفید با این رو بله قرار که مرحله دوم مرحله ابر شدنشه. یعنی اول سنگ‌ها رو با تراشن برن بالا بعد از ش... از سختی و دشواری ابر بگذارن اه... این به سربرش فولاد و برتنش گبر یعنی که این خارهای مازندران هست. گبر یعنی ذره پوشیده ذره‌ای که خاردار هست. یعنی خارهایی که تو جنگلا هست. حالا ما با اتوبیل گذر میکنیم از کنار اینا جنگل ها نمی دونیم که بارد شدن به جنگل چقدر دوشواری داره باید از همین تیغ ها خار ها شاخه در هم از اینا بود و اینا همه ذره در حقیقت میشه پادشاه پادش ها این زره ای که بر تن کوه های تبرستان هست اینا همه مانه هست بعد که به صورت عبر در اومد همتن زمان دست اوی بخندید و زیشاه به روی به رویش نگه کرد کاووس شاه ندیدش تذابار تخت و کلا خوزان رنج های کهان یاد کرد دلش خسته شد خسته یعنی مجروح بله دلش خسته شد سر از باد کرد به دشخی این فرمود تا تیز بگیرد کند تنش را ریز ریز تنه تنه چی رو ریز ریزیزیم کنند همین راه رو که میخوان بسازن باید سنگار را تیکه تیکه کنن خورد کنن. خورد کنن. راه درست کنن. هر هران کس که بود ناسپاس وزیشان دل انجمن پرحراس بفرمودشان فرمودشان تا بریدند سر فکندن جایی که بود ره این دیگه روشندترین سخنه یعنی راه درست کردن یعنی از دیوان یعنی از کوها هر کدوم که سخ گذرتر بود اینا رو همه رو بوریدن ریختن. ریزه ها رو ریختن، توی راه گذر یعنی راه درست کردن تا با به وسیله این راه بتونن برن از سوی دشت مرکزی به کوهستان ها و ماز و به سوی تبرستان تلفن ها بهه شدم آقا دکتر سدی و خیلی پیامک ها زیباست و تا تلفن ها بر تلفن هایی که آماده میشه مییم تماس گرفتید. من تعدادی از پیامک ها رو با اندازه شما به خونم آقای دکتر جنیدی. درود بر فرزند شایسته ای ایران آقای دکتر فریدون جنیدی واقعا دوستشون داریم به بلند های دمابند آقای حسن محبی کرماشانی آقای حسن محبی ماشانی از اسفحان حالا اینجا تو بر شما من سال ایرانیان هستم تن و روح و جان و روان <تصفيق> و دلم مهر و عشق پیوند به ایران و ایرانیان همواره هست سپاس از آقای دکتر جونیدی به خاطر اینکه برای ما وقت میگذارن و شبهای ما رو محتابی میکنند. و بعد این ب... اسم ننوشتن فقط شمال تلفونشون رو من میتونم بخونم سیزده سه شماله وسطشون نمیخونم 96 30 شاد باشید جان و من فدای فرهنگ ایران و ایرانیان است سلام مانده نباشید در شعر دماوند به بهار دیو سفید دیو سپید آیا گرفته شده از همین فرمونده استاد است من نفهمیدم در بله من میدوند چیه بله این اتفاقا مال کشورای بهار اونم بود بله بله این شعر سروده این یه احساسی است درک نکرده بود که دیو کوه و دیو سفید اما این احساس در رو برانگیخته شد چون دید که همیشه این دماوند سفیده پس بعد گفت که ای دیو سفید پای دربند ای گنبد ای, ای دماوند ولی بله احساس خیلی خوبیه و بالاخره اینا جرقه‌هایی است که میزنه در دل ایرانیان نسبت به تاریخ افتخار گذشته صفر مح و نوده سیصد و چهل و شش خودم می فسیات دو تا سلام برنامه شما رو دوست دارم آقای احمد قدیمی این رو گفتند و حالا نمیدونم مام شما رو دوست داریم و حال خیلی زیاده حالا اگر اجازه بدید بریم وارد بحشیم میخوام بحث دارم میگردم دنبال پیامد هایی که در ارتباط با بحثمون باشه که متاسفانه حالا من چیزی رو پیدا نکردم حالا این شالا پیامکار نگاه میکنم و میخونم برای شما که در ازباد بحث باشه بحث رو ادامه بدیم خب میده خب حالا که ما رمز هفخان رستم و جنگ ایرانیان با دوین ها و ها رو بررسیدیم به یک رمز رمز باشه های دیگر برده پر در داستان ایران یک در حقیقت بخشی هست به نام اکوان دیو داستان اکوان دیو رو من برای شما می‌خونم بعد وقت رمزشو با همدیگه میگوشهیم اونی که در زمانی که که خسرو پیروز شد و دشمن در حقیقت تورانی از میان رفت و ایرانیان شاد بودند و به شادی میزیستند و اون در یه وقت یک دیو پیدا شد یه گوری پیدا شد گروه خری, خری پیدا شد که بعدا خصو رو فهمید این دیوه و آغاز اینه که خرند که این داستان بشنود به دانشگرراید بهین نکرود خود فلروسی میفرد. یعنی از اشت های خود فررویه خرند که این داستان بشنود به دانش گراید به دین یعنی این به, گراید. به دین، یعنی این نه به این داستان نروود از روی دانش این رو بسنجه ولی کن چون معنیش یا داوری شود رامو کوتاه کند داوری خیرات من اگر معنی این رو پیدا کنه بعد اون وقت داوریش کتامه یعنی دیگه داوری خواهی نمیدنه خیلی چطور شد اکوان دیو چی هسته یه دونه گرخر چطور دیو شد یعنی همونجا داریم ما آدرس میده که رمز گرشوهایی کاری بله از در آغاز شانم اگر خاطرتون باشه دو بیس بود که من همون شب اول خوندم حالا باز تو تکرار میکنی هزار بار همینو گفته بشی تو این را رو... یعنی شاهنامه رو تو این را دروغ و فسانه اخ... مخان. مخان. مخان به یک سان روشن زمانه مدان از او هرچه اندر خورد باخرت دکر بر راه رمز معنی برد این مفهوم در پیش گفتار شاهنامه ابو منصوریم اومده که در اونجا میگد که این برای این سخنان رو باید راز آن را بدانی اون پدررویک گفت رمز اونجا میگه راز چون راز آن را بدانی بر, بر تو درست کرده و کسانی که دشمن دانش باشن این را دروغ گرداند یعنی این داستان هایی که اینجا ما میخونیم اگر رازشون رو دریابید اون وقت ببینید که چقدر درست بوده حالا راز اخوندی ب من برای شما داستان رو می خوونمخ سخن گوویی دهقان چونین کرد یا که یک روز که کیخوسرو از بامداد بیا راست گلچند به سان بهار بزرگان نشستند با شهریار چو از روز یک ساعتم اندر گذشت بیامد به درگاه چوپان زدشت که گوری پدید آمدند در گله چو شیری که از بند گردد یله یله یعنی راها آزاد در خراسان هنوز یله بهکاربرد داره ولی دیگه در جاهایی دیگه من نشنیدم یکی برکشیده خط از یال اوی زموشک سیاه تا به دنبال اوی از یالش تا دومش یک خط سیاهی که همانند رنگ موشک کشیده شده بن. یکی نرشیر است گویی دو جم همی بگ سرد یال اصبان زهم یعنی به اصبان حمله میکنه و یال اصبان رو پاره میکنه بدان از خسره که کان نیست گور که بر نگذرد گور زستی زور یعنی زور گور از عصد نمیگذاره پس این گور نیست بله برستم چنین گفت که این رنج نیز به پیکار برخیشتن سنج نیز برو خیشتن را نگه زوج، مگر باشد احریمنه کینجوی چنین گفت رستم که با وقت تو نترست پرستنده تخت تو من آمادم وقت تو بلنده و پرسنده تخت تو که من هستم از این دیو نمیدرسم میرم به مباردش میرم برون شد به نخچیر چون نره شیر کمندی به دست اجده هایی به زیر اجده یعنی رخشه نه به دشتی کجا داشت چوبان گله اوزان سو گذر داشت گوره یله سه روزش همین جوست در مغزار همین کرد برگرد اصبان شکار چهارون به دیدش که رازان به دشت چه بادش شمالی برگذشت اینجا در حقیقت مقابل کنندگان شاهنامه نیمی که که باد شمالی این چی شمال در خراسان و در تاجکسان افغانستان به معنی نسیم و باد خونک میاد شمال اونا به نسیم با و باد مولایی و باد, باد مولایم خونک مولایم و با با با با با بله میگن شمال, شمال. وقت تحصیل کنندگان فکر کردن باد شمالی باد شمالی چی میتونه بشه در نیافتن باد شمالی یعنی بادی که موندن دیگه خیلی باشه. بله چون دو باره به میگم اینو چهارم به دیدش گوزان به دست جو باد شمالی بر او برمودشت. بر اندیخت رشت رخشه دلاور ز جای جو تنگندار اومد دیگر شد برای چون این گفت که این را نباید فکند. به باید گرفتن به خم کماند. اندیشه فتن دیگرگون شد. چون قرار بود که این این رو گور رو بکشه دیگه بکشه که نه دریقه است که این گور به این زیبایی رو بخوشیم بلکه ما این رو تصاحب بکنیم بگیریم به خم کمند و او از آن ما باشه نشایت کردن به خنجر تبا بدین سانج زنده برم نزدشا چون گور دلاور کمندش بدید شد از چشم او در زمان ناپدید بدان است رستم که آن نیست گور عبا او کنون چاره باید نزدرست چراگاه رخش آمد و جای خواب نمت زین برف کند و بر پیش آب میدونی که زیر زین یه نماد میذاشتن تا این که زین که چوبی بود و بلکه میخوای آهنین هم داشت پشت اصف رو آزار نرسونه رخ نکنه، رخ نکنه، ریش نکنه بله <تصفيق> این نمت زین اصف رو وقتی که گور شد و رستم هم دیگه موقع موقع خوابش بود باز کرد از این رو و نم این رو زیر افکند خودش شش خوید و از رخش روفت کرد چراگاه رخش آمد و جای خواب نمازین از اینین و پیش آب بهدان جای که خفت و خوابش رو بود که از رنج و از تاختن مانده بود مانده یعنی خسته خسته خستهی که امروز میگیر نه مانده نباید بر مانده نباشی خ چ اکواش از دور حالا همین دیف دیوه گور دیوه هم اخوانه من به زودی میشکافم این مفهوم رو ولی بله حالا فعلا خود داستان رو دنبال کنیم چون اکوانش از دور خفته بدید یکی باد شد تا بر او رسید به مانند یک باد سریع اومد بالای سر رستم زمین گرد ببرید و برداشتش زهامون به گردون بر یعنی اون زمینی که روستن روش خوابیده بود این اطرافشو برید و اینو بلند کسر کرد آسان چه روستن بجنبید بخیشتن به دو گفت اکوان که ای پیلتن سوی آبتن دازم از ار سوی کوه ار یعنی یا یکبار بگم گفتم یه هم گفتم هکر و بعد شب شد ار و صورت اور در انگلیسی هم به منی ای در آمده و بازم گفتم که ریشه‌های های همه زبان های اروپایی در ایران و در عبستاز منطقه اونا نمیخوان این رو اقرار بکنن و فکر کنید که ریشه هاشون در یونان یا در زبان لاتینه ولی خب ما پس از کارهای مقدماتی که داریم این رو روشن بهشون نشون خواهیم داد کنید تا بدونن که مادرشون کجاست مادر ایران کجاست که مادر آریایانه و فرزندانی که از مادر بریدن چقدر ستیزگر و ما هموار و خشن و نادرست هستن بلد. این کارهای آینده بنیاده شما حتی در هر برنامه اشاره کنید حالا در حد چند واجه میفرموید من چقدر... خواهد بخوام... که جوانان اینا رو ببینن بشناسند چون تا به حال هرچی این دانشگاه مدرس دادن همه در جهت خرداشت ارزش میهن بوده و بچه ها خیال میکنم ما در هر چیزی برقی وامداره اوروپایی‌ها هستین نبودم اونا نبودن ما نبودیم در حالی که اونها همه وامدار ما هستن در همه زمینه‌های دانش بشری وامدار ما هستن از جمله نجاتشون هم از ماست و زبانشون هم از ماست این حالا کم کم دارا... اون‌ها به فکر بیفتن او اول نه من دلم می‌خواد که فرزندان ایران بیدار بشن بدونن که چه مادر با بلندی دارن بدونن که جایگاه نیاکان چون کجا بوده این خیلی خیلی مهم است سلام علیکم. میخواستم یک توضیح کوچیکی خون فعلا درباره اون برنامه ای که کاووس یه فکر روایت میکنه که بره به آسمان، به ملک به پیونده و اونجا چند تا میارن زیر تخت میبندن. این میخوام که این واقعی یا نه. که گوشت بره‌ای بندن اونجا و عقاب پرواز میکنن میرن به آسمان و بعد خسته میشنو فروت میان به زمین و کابوس در شرایط نمناسب قرار میگیره بخواستم درباره باره این یک ای توضیحی بگن شبسا این واقعی هست یا نیست با سپاس فراقان درود بر شما بله این داستان هست مطابق ازیدیم به گاه خودش اون رو بررسی کنیم و رمزش رو بهش کنیم ما در داستان اکواندیم هستیم با هم درنگ داشته باشیم و با هم با شاهنامه پیش بریم به اونجا هم خواهیم رسیم سلام یه سوال داشتم از جناب دکتر جوزینی. خاص می‌بینم ایشون بارها فرمودن که اثری تو جهان و بلندای شاهنامه وجود نداره. اینو طبق تحقیقاتی میگن یا هرو هر تعصب ایرانی بودن؟ اگه جواب بدن ممنون میشم. قربانت کردم من جودینی نیستم من جنیدی هستم فریدون جنیدی و تاپوکنون 36 جلد کتاب در این زمینه ها نوشتم اگر شما کتاب زندگی و مهاجرت آریویون رو بخونید که تفسیر شاهنامه است اون وقت متوجه خواهید که در جهان بلند پایگاه‌تر از شاهنامه فردوسی نیست این از روی تعصب نیست از روی سنجش سنجش خرد است و شما پیامک های زیادی ما برای ما رشته و سوال کردن درباره یه, سو... یه سوال هستش با سلام خدمت آقای دکتر جنه و همینطور موجودی برنامه آیا کتابی هست که داستان شاهنامه را به صورت شعر و معانی جامعه و کامل وجود داشته باشه نام ببرید و فردوسی از چه سنی متوجه شد میتواند شعر بگه ممنون از برنامه خوبتان بابک از مشهد درود بر شما من در برنامه های گفتم که کارمو با داستان ها پهلوان آغاز کردم 11 دفتر نوشی شد و اینا شعر و نصر همراه هست و واجه های مهم همشه گفته شده منطقه این چاپ دوم این کتاب به پایان رسیده ما در صدر هستیم که چاپ سبوم رو همزمان با نمایشگاه بینومه کتاب ایرانیان ارزه کنیم اگر شد که شد بگر نه یک ماه دیگه این کتاب به دستتون می میرسه همه داستان رستم رو, رو بر داره و شعر و نصر رو گزارش و پینیویس هم داره اتفاق خیلی خوبی افتاده یکی از شنوانده های برنامه که نقاش هم هستند با درود بر شما و میهمان گرامی شما بسیار برنامه شما عالی است من دیگه هر چی تابلو میزنم حتما از اشعار فردوسی در آن به کار میبرم کار خیلی جالب. شاد باشید. پیدا کردن فرهنگ، پیدا کردن گذشتگی با شکوه، پی بردن به شکوه و عظمت نیاکان خرابمند من به شما شاد باش میگم. این همون اتفاقی که ما در پیش بودیم و میگفتیم به صحبت میکردیم که هنرهای دیگه مثل حالا سینما، تلویزیون، بله. نقاشی، اینا مجسم سازی اینا بیاد و جهت معرفی بهتر شاهنامه بیان کار کنن و به مددی کنن کمکی کنن که این گوهر به بیشتر شناخته بشه آغاز شده دیگه به این ترتیب آغاز شده خدا شد خورم و این روز <تص user> و حالا ادامه بحث رو داشته باشیم که باز هم من پیامکار رو ببینم چون سوالات پراکنده است بعضی از سوالات و من چرمنددم از بعضی از شنوونندگان از سیون پیامک های شما زیاد هست و می که از بحث دورشیم در استباط با بحث اگر صحبتی بود پیامکی بود کمک می کرد به شناسایی بهتر ما از چهار فردوسی فروسی من مخدمتتون نسب میکنم خواهش میکنم به بهواش اسلام کن خب پس رستم با روی آسمان پیتار میشه و اکوان بهش میدی سوی آبتم اندازم ار سوی کوه الینیاب بله. کجا خواهی افتاد دور از گروه؟ چون رستن به گفتار رو بنگرید بنگرید نتوجه کرد چون به گفتار بنگر... نگریستن نتوجه کردن بل چون رستن به گفتار رو بنگرید تنم در کف دیو باجونه دید در نظر بیارید که حالا اینجا کم کم خود داستان داره شکافته میشه تا به حال گور بود بعد دیو شد حالا دیو باجونه است اینا یعنی چی؟ چنین داد پاسخ که دانای چین یکی داستانی زدستن درین داستان زدن یعنی زرب المسل حالا ما این که داستان زدن فرسی به عربی ترجمه شد شو شو زرب المسل ما عادت کردیم بگیم یک زرب المسلی هست این خیلی نادرسته باید ما با بگیم داستانی هست که این رو از پیش زدند خب یکی داستانی زدستن درین که در آب هر کو برای از هوش هوش یعنی مرگ مرگ وجوه دیگه که نذیرین هست اون هوش هست هوش که در واژه هوشیار هم خودشونشون میده هوش یعنی جان یعنی جان یعنی زندگیش که اگر برای از هوش یعنی بمیره اگر کسی در آب بمیره روانش به مینو نبینه سروش یعنی کسی که تو آب میمیره به اون جهان به جهان مینو رهنمون نمیشه و روان او سروش پاک رو نمیبینه اینها از اندیشه های فرنگی ایران و واستون. باز. بله. میسوری همی در بماند به جای نیز روانش نمیره به دیدار سروش و در همین جهان بازاری میمونه. خرامش نیابد به دیگر سرای به جهان مینو و خاطرفینا همه یک مفهوم داره میرسه. به کوه هم بیان دستا بابرو شیر ببینند چنگال مرد دلیر. میبینید که اینجا رستم داره مخالفه اندیشه خودش با اکوا دیو سواد بکنه که بر میرسی به رزروستتم چ بشید اکوان دیو برآورد بر سوی دریا غری ونی عکس کرد اون چیزی که روستم میخواست عکس رو کرد به جایی بخواهم فاند گفت که در دو گتیب به ماونی نهفت به دریا و ژرفن بر اندختش کفن سینه ماهیان ساخت میخواین آب بخورید ببخشید نه نه نه بخواید. بعد وقتی که رستم افتاد تو آب خب روکوه که پاره پاره بشه خب با شنا خودشون اجاب داد دریا به مردی به یک سو کشید برای اومد با و خشکی بدید برای سود و بخشاب بند از میان برای بله چشم بینهاد ببر بیان ببر بیان زره رستم بوده کمند و سلی هشت شد نم یعنی نمش از بین رفت و خشک شد زره را بپوشید شیر دو جام. پیاده همی رفت دویان شکار به پیشندر آمد یکی مرخزار دمان رخش بر مادیانو چو دیو میان گله برکشیده قریب. یعنی رخش وقتی که رستم نبود به تنهایی رفت توی مادیانها و از اونا جفت در حقیقت برمی به مارید از گرد و زین برنهاب زیزدان نیکیدهش کرد یاد. در نظر بیارید که یاد کردن از یزدان در در آغاز نبود این در اینجا هست در این اونجایی که در بند اکوان افتاد از یزدان یاد نکرده بود دل اینجا از یزدان نیکی دهش کرد یاد دگر باره اکوان به دو باز خورد نگشتی به دو گفت سیر از نورد برستی دریا و چنگ نهنگ به دشت آمدی باز پیچان به جنگ حمطن چو بشنید گفتار دیو و راورتون شیگیر جنگی غریب ز افترا قفشاو 피شانکمان بیافتند و اومد میامنش ببند بپیچید بر زین نو گوزه‌کردند این که نمی‌دونم شما تو این من که تلویزیون ندارم می‌دونید نه رادیو نه تلویزیون ندارم چون از بس با کتاب و اینا سرگرم شدم ولی با داشته با باشین رادیو بر نمگه ولی بیشتر دیدم که این کسانی <متحد> که در, در امریکا که که قهوه‌بازها اینو گاو یعنی چی کار می‌کنن رو که انداختن این کَمَند رو یا روی ران خودشون می‌گیرن یا تو حرفوس زین تا محکم بشه تا اون خود که مه... به گریزه اینجوری نتونه بیفته زره داره... این خاصیت کَمَند افکندن افکندن که میبینی در شوانم درست اومده همونطور بپیچید بر زین و گرز گران خ.. بر خیلی چون پودک آهنگران بذرد بر سر دیو چون پیل مست سر و مغز و یول و او کرد طست خب حالا باید برگردیم به گزارش این کار بله ایرانیان به خوشی پرداختند و فراموش کردند در حقیقت خیشخوری هایی که داشتند و گرایش زیاد به خوشی کم کم مردم رو رهنمون میشه به خوشگذرانی و تنبلی و بیکارگی و بعد دگرگون میکنه. اکوان گونه دیگر از اکومن است. اکومن به زبان اوستایی آکامننگ به زبان پهلوی اکومن یعنی اندیشه بد. این اک اینجا هست در ایک انگلیسی خوش نشون میده. ایک انگلیسی یعنی چی؟ یعنی بیماری یعنی رنجینه. بله. رنجه. بله. اکومن یعنی اندیشه بد یعنی ایران در ایران اندیشه بد مستولی شد با خوش های که میکردند خب حالا باید با اندیشه بد مبارزه کرد کی میتونه مبارزه کنه پهلوان بزرگ کسی که از هفخان گذشته کسی که نماد مردی مردانگی و اندیشه و مهر ایران هست او آماده میشه که بره و با اقوانه دیگه یعنی اکومن یعنی اندیشه بد مبارزه کنم منطقه وقتی که با این اندیشه بد توبرون میشه اندیشه بد همیشه خودشو خوب نشون میده مثلا انسان با خودش فکر کنه من برم فلان بانک بزرگ جهانی بزنم و بعد پولاشو برم جزیره بخرم بعد من هلیکوپتر بگیرم تمام این زیباست اندیشه بده ولی ها. مظاهری تو همین اندیشه چه زیبانشون میده این زیبایی اون در حقیقت این اون گوره یعنی از همه گوره ها زیباتر بود و انقدر زیباست که حتی پهلوان ایران گوره زیباییش میخوره میگه خب این از آن من باشه و من اینکه بفهمم همونجا هم وسطی میکنه این وسطی بس بس بس بس حتی در مبارزه و خب وقتی که اینطور شد اخوان مغورزه و این خوابش میبره خوابش میبره یعنی ناآگاهی ملی یعنی کشور به خواب رفت از تنعوع و از شادمانی و خوشگذرانی و بیکارگی خواب بر ایرانیان مسول میشه و اکوان از این خواب ناآگاهی استفاده میبره و اینارو سر به هوا می‌کنوی برد بالا رستم رفت بالا زمین رو می‌کنه سر... زمین رو بالا زمین بر بالا رستم سر به هوا شد چون چون اسیر اکوان دیگه الان چون اسیر اکوان سر به هوا شد مونتا منطقه... چون برای مبارزه با این میخواست انجام بده کار رو بیا که باید با اکوان یعنی اک اکومن یعنی انبیشه بد مبارزه کنه یعنی اون چیزی که بر میگه برعکسش رو بخواد ازش اون گفت به کجا بندازم تو رو به کوه یا با دریا او گفت اگر من بگم که به دریا بنداز میبره تو خوب نوزه پارو پارو میشه یعنی مخالفت اندیشه بد با اندیشه نیک مخالفت اندیشه بد با جامعه اصلا مخالفت انشه بد با انسانه بینیم؟ همین بدفهمی همین بدفهمی بس پس منو باید گفت منو به من داز به دریا بری که اگر به دریا بندازی در آب بمیرم روانم همینجا به زاری میمونو و دیدار و سروش نمیرم و پس منو بندازی به کوک اقلم این شیروپلنگ اینا بیدیم یا لو کتوه این مرد دلیل رو ببینم خب اکومن عکس میکنه میبره اینو میگه حالا که تو کوه و, و, دریا. و اینجا چون مبارزه کرد با اندیشه بد رستم فهلوان توانست که با شنا و اینا خودشو برستونه برای مبارزه پیلا با اکوان وسیله لازم است وسیله وسیله کار در ظاهر رخشه در باطن اون در حقیقت اون حرکات اون اندیشه ها و اون پیش آمد هایی که انسان رو پیروز خواهد کرد هندیشه بله. هم بد این بار که با او روبرو شد کمند داخت او رو کشت و شکست و باره باره کرد یعنی با مخالفت کردن با اندیشه بد و با یاری یزدان دیدید که از جهان آفرین را بخوند باران خوص جهان آفرین را نخونده بود اسیر اندیشه هندیشه بد شد بار دوم جهان آفرین رو، یعنی به یاری یزدان و اندیشه های نیک و فرمانهای گزدان انسان بر اندیشه بد پیروز بشه این بود پیروزی پهلوان ناموردار ما بر اندیشه بد یعنی ایرانیان بر اون دنبال و خوشگذارانی ها ناچار شدن مبارزات بعد از اون پیروزی فکر کردن بر... که تمروزه به بیکارگی و تمبلی برد. و پیروز شدن آخر بر اندیشه بد پیروز شدن امیدوارم که همگان بر اندیشه بد پیروز بشن شهر سمنگان افغانستان محلی است که این محل گفته میشه که قصر و کاخ رستم بوده که به صورت محلی در زیر کو چند تا جای خیلی بزرگی دروردن و روبروی اون در بالای کو محلی است که به تخت رستم معروفه حالا این خودش و حتی در بیرون این محل قبر سهراب هم هستش که میگن این قبر زهرازه که شاید این درینی برواقعی بودن روستن باشه خیلی ممنونم خدا حافظ شما درود بر شما بعد خوب مردم ایران, ایران فرهنگی این نام رو دارم و ما سمنگان رو در افغانستان داریم یه سمنگان بیرون شده در میجابور یک سمنگان در نارمک بود که اومده وارد شهر شده یک هم در زنجان داریم این نام‌ها تکرار شده اما ما می‌دونیم که نبرد رستم و سهراب در دژ سفید انجام گرفت و بنابراین سهراب در سمنگان نمرده می‌بینید اینا مردم روی علاقه‌ای که به داستان شاهنامه دارن می‌خوان همه اینا رو در یک جا از اون خودشو بکنه و از این مثال‌ها فراوان در ایران با سلام و سپاس فراوان برود بر پرفسر جنیدی از برنامه خو بخواستم سوال کنم ببینم شاهنامه که درباره رسم نوشتن تا چه حد واقعیت داره و یا یک افسانه چرا که در شاهنامه من خواندم فردوس حکیم توس نویشته که رستن یلی بود در سیستان منش آوریدم به این داستان و بعد از اون میخواستم بپرستم ببینم این جنگ رستم و افراسیاب این سمیار ترک همکسر افراسیاب در کجا ایران بوده چرا که میگن در منطقه لارستان بوده خدا حافظ هستم از بناروی لارستان فارس بر شما درود به لارستان خب ما در همین زمین داریم کوشش می‌کنیم تا معلوم روشه که شاهنامه تاریخ واقعی ایرانه و افسانه نیست اون بیتی هم که شما خوندید از فردوسی نیست از های فردوسیه که منش کردم رستم داستان شما خوندید آواریدن بدین داستان نه این از فردوسی نیست اگر می‌خواهید داوری فردوسی درباره رستم جان پهلوان بدونید فرمود که جهان آفرین تا جهان آفرید سواری رستم نیومد بدی این کو تواری فردوسی خواهش می‌کنم به این ها توجه نکنید این کارنامه نیاکان خردمند شماست و غیر از راستم چیزی نیست و هم همین امروز ما امشب ما درباره اکوان دیپ صحبت کردیم درباره دیوان و مازندران اینا نشون میده که شاهنامه درسته و پیامک‌هاش هایش ما همین در همین زمین هم هستش که سوال کردن سلام و خدا خدمت شما و بنده سپاس گذارم و سوال داشتم از آقای دکتر جنیدی که راز جاودانگی فردوسی در چیست؟ راز جاودانگی فردوسی در اونه که به نامی جاودانی نیاکان خودش دست یاخت و با برترین سخن بشری توانست اون نامه را آرایش بده و به جهانیان هدیه بکنه خسان هم بودن که هایی رو گفتن مثلا بزر نامه نمیم. فرامرز نامه. اینا اولا که گفتارشون بلیغ و رسا و آهنگین نبود و توان فردوسی رو نداشتند و بعدم داستان نادرستی بوده اما شاهنامه که تاریخ درست ایران هست به گفتار فردوسی آراسته شد و فردوسی روان جاویدان ایران کردید. میکنم زهزایی هستم از تهران آقای دکتر جوندی بفرماییم که که نو چاهنامه بخریم که به سلو افسوده کمتری داشته باشه متشکرم و برنامه خوبه شما خدا نگرد شما میتونید چاهنامه که تایی بفرمایید حالا تا اینجا که افسوده ها در مورد افسوده های شاهنامه صحبت زیاد شده و اشاره شده شاهنامه‌ای هستش که خود آقای دکتر جنیدی گردآوری کردن اگر خواستید تایید بفرمایید در با بنیاد نیشابور میتونید تماس بگیرید و از اون طریق تایید فرمایید در نموشکای کتاب هم آقای دکتر حتما حضور دارن و چند تا از پیامک ها این رو اشاره کرد من آقای دکتر جنیدی شما در نمایشگاه ما ببینیم. آر آرزو اینو می‌خوام خدا، باهمیدو خدا، نشر بلخ. نشر بلخ بواسطه بنیان نشور من نام بلخ انتخاب کردم به دلیل مهری که به افغانستان گرامی و تاجیکستان گرامی داریم و ما باید بدونیم که پیوسته فرهنگی هستیم، پیوسته نژادی هستیم و بدون یاری هم در این دنیا پر نمیتونیم سرمونو سرمون بلند کنیم. بنابراین به نام نشر بلخ من رو با امید خدا در نماشگاه این شاهنامه که ارز کردن در مورد افسوده ها به شاهنامه خود آقای دکتر توضیح یک شاهنامه خیلی کامل هست به شاهنامه آقای دکتر جنیدی شما میتونید با تلفن های بنیاد نیجا بود هشتاد و هشت نوود آرامتر آرامتر بیست و هفت هشتاد و چهار تماس بگید و تغییر بفرمایید و یکی از سوالاتی که اینجا هستش در پیامک هایی که اومده با سلام خدمت آقای دکتر جونیدی رمزگوشایی در شاهنامه چگونه است؟ خب ما همین کار رو می کنیم فکر میکنم که این کاریان دربار در گفتم خیلی روشنه اونجا اوناتی درباره سنگ‌کوب ریس کردن و به راه ریختن و یعنی نشان دادن این که اونجا دارن راه می‌سازن تا بتونن به کوهستان برسن البته بعد از اینکه من اینا گفتم چون اینا رو کسی نش من من آن رو سپاسگزارم که یا روان فریدوسی رو سپاسگزارم که اینا رو در آینه زمین من یعنی متجلی کردن برای که از بد کودکی من این جون نسور ایران بودم و انقدر باور داشتم به بزرگی نیوکنم که سینم شد مثل آینه و نیامکن خرابمندم و تصویر خودشون رو این سینه افکندم خب این رمزگشایی‌ها داره انجام می‌گیره بعد, بعد از اینم به امید خدا انجام می‌دیم یکی از پیامک‌های دیگرم با اجازه شما بخونم با درود به آقای دکتر جنیدی لطفا در مورد پنهان شدن کی خسرو و یارانش در کوه البرز کمی توضیح دهید با تشکر رفیع بوزانی از کرماشان. درود به کرماشان این جز برنامه من هست این یک در حقیقت رویداد شگفتی است در تاریخ ایران یعنی بروزی است که امروز هم دانشه زمین شناسی اون رو تشخیص داده به امید خود در آینده او در این بار سخن خواهیم گفت. ابتدا خواستم از قدیزانی که جناب آقای دکتر پریدونی جنیدی را برای همکاری با برنامه پنجرهای روم مهداب دعوت کردن تشکر و قدردانی بکنم همچنین جناب آقای دکتر بنده سالها که با آثار شما آشنایی دارم به امشب دو سال را مطرح کنم. یک در هفت هار رستم چرا فیدوسی بزرگ از کلمه خان استفاده کرده چرا کلماتی نظیر جنگ پیکار نقد را به کار نبرده دو تقدس و کرامت عدد حق را بگویید عدد هفت در هفت سین، هفت آسمان هفت پیکر استفاده شده است روز بر شما خان باجه فارسی و هفت خان یعنی از هفت خان بودشتن اشکالی نداره برای که همه اینا با نبرد که نبود که ما فرض کنیم در خان دوم که تشنگی بود ما نبرد نداشتیم و فقط می‌بینیم که در اونجا قرم داشتی میاد بر رستم رو راهنمایی میکنه به سر چشمه آب خان به همین محنیست. من هفته پیش درباره تقدص شماره هفت بسیار سخن گفتم که از کیش نخستین یعنی پولود کیشان که حدود 14000 هزار سال پیش تعنیدار شد در ایران تا زمان کیش مهر بود و هفت سیاره در خوشیدی گروه خوشیدی رو شناختند و این صدایش میکردند بعد از اون که کیش مهر اومد هفت پایه یعنی درجه یا زینه کیش مهری پیدا شد بر اساس همون هفت و پس اینکه و دوستان راستم در همون زمان میبینیم که از هفت خان کودشیت تو مرحله بالا برسه پس از اینکه اسلام هم اومد میبینیم از مجموعه اون نبیشته های یا اقاایت و گفتارهایی که درباره منازل رسیدن ب... انسان به... به حق نام برده شده مثلا سوروبردی چهل مجلس گفته و انصاری من الان هیجان شده انصاری خواج عبدالله انصاری ست مجلس گفته و بعد عزیزدین نصفی یک مجلس میگه, میگه یک قدم بر نخص خود نه یک قدم بر خوبی دوست هرچی بگنی بینی دوستین با این آنت کار نیست میبینید این خیلی سخن درستیه اما ملت ایران به خاطر اون پیشینه گرامی داشته عدد هفت هفت شهر عشق عطار رو انتخاب کردم و هیچ کس حاضر نیست از این عدول بکنه در این بارم من درسی پیش صحبت کردم نشون دادم که عطار خودش در پیری مخالف این هفت بود او هم همون حرف عزیزتین نصفیه رو قبول داره که انسان پیوسته به خداست به شرطی که خودشو درک بکنه و گویو پس شما هفته پیش اینا رو نشنیدید حالا من خلاصه به شما عرض کردم بله از زمان و باستان بوده و هنوزم هست درود و سلام بر استاد عزیزهای دکتر فریدون جنیدی لطفاً از استاد بپرسید که مگر کوه در نظر ایانیان باستان مقدس نبوده و گرامی داشته نمی‌شده چطور فردوسی آن را دیوانا میده از همدان شاد باشید دوین میده نامی دوین نامیده من همه اینا رو شب گفتم این همه دوین و اینا رو خب کم کم واجه ها تغییر شکل میدن فرض کنید که ما یک واجه داریم بر الان به معنی میوه یک واجه داریم بر به معنی بالا یک واجه داریم بر یعنی بغل و آغوش خب اینا ما ببینیم پیشینه اینا چی بوده اون که بوده اپاییری بوده یعنی بالا شده ابر در فارسی در در پهلوی ابر شده در فارسی شده بر اینو این نمیشه اینو با بر میوه یکی بگیریم وقتی گیریشوها رو میش گفتیم اینا خودشون رو نشون میدن بنابراین دیو نبوده دوین بوده این همون هم نام که از آقای دکتر منچستر تو آوردم نشون میده که اینا بلندی به صورت دوین بوده کم کم در زبان به صورت دیو در اومده و به صورت دین در اومده دین ها رو شمردم دیو هم نه دیو این دیو یعنی چیز نیست و اتفاقا واژه دیو در فرهنگ فارسی دیو با تلفظ میشه و این دیوه فرق میکنه برای که ما این فرق رو بدونیم همین واژه که امشب عرض کردم هوش یعنی جان برای از هوش یعنی جانش بر بیاد خب این واژه در عربی بوده اعوش بعد اعوش با پیشوند انا معکوس میشه میشه اوش انا, اوشا. انا اوشا در فارسی میشه انوشک در فارسی میشه انوشا یعنی جاودان این اوش در ضمن خود واژه شده هوش و ما الان که بخوایم هوش و بیر بکار بریم باید بگیم هش با دیگه فرق میکنن من اینا را شکافتم و امیدوارم که توجه بکنید بازم با و بازم به امید خدا بیشتر نه دیو به معنی دوین هست اون یکی که در نظر ما بدجه میکنه اون دیو هست عزیز اون هم که همیشه پاینده باشم سوالی که داشتم این بودش که چند روز پیش توی کتاب هماسه ملی نوشته ی تیادو نورک که میخوندم که گفته بودن که سردوسی برای اینکه که یک سری از مطالب رو که به نظر دروغ ها به وسیل مجاز استهاره یه تغییراتی درش ایجاد میکنه که به نظر طبیعی جل بکنه میخواستم ببینم این موضوع چقدر صحت داره و سوال دیگه که داشتم این که درباره باید موجودات دیو توی کلن شاهنامه دقیق توضیح بدن که این دیوها ها چجور موجودتی بودن ما شکرم خود تفهمیم. درود بر تو دختر ایران درباره این استعارات داریم صحبت می‌کنیم میریم جلو با امید خدا شما و همه شنمندگان از اون برخوردار خواهید شد و راضی خواهید شد منطقه من به دختر و پسر ایران میگم که دست بردارم از پیروهی خربیان نولد که زمانی که اینا رو گفت نه رو میشناخت نه این رمزها رو میشناخت و یکی رمزها رو ما بریم این بگوشهیم میبینیم که حقیقت واقعی داستان درسته یعنی رویداد تاریخی اونها با دید کژ اروپایی خودشون شانومه رو بررسی کردن متاسفانه استادان دانشگاه های ما هم از روی اونها نوشتن همه اینا رو این بر کردن این آتشار رو که ما خیال کنیم که بله شما فیدوسی استعاره کار برده و خواسته در بعضی جاها داستانهای درست رو درست جلبه بده نه چنین نیست این داستان ها همه درسته و یکی یکی ما میریم جلو میبینیم خواهش میکنم کتاب نورتکر بذار کنار و شاهانامه رو بخوند من در اینجا یه خاطری برای شما نکنم یک جوانی اومد برنید نشابور پیش من و این چیزهای باستانی رو نخونده بود و از یکی از یکی دو تا شاعر زمان حال دفاع می‌کرد. من گفتم که خب شما باید اگر بخواد شعر رو ایرانی رو بسنجید باید از سعدی آغاز کنید اگر اگر تاریخ ایران میخواد از شوانامه ولی حالا شوانامه رو کنار می‌ذیم از سعدی این به من اصرار کرد که من چه کتابی درباره سعدی بخونم من پاسخ دادم که تو کتاب سعدی رو بخون گفت آخه نه چه کتابی درباره سعدی بخونم گفتم ببین کتاب سعدی رو بخون باز دو مرتبه به بار سوم گفت آخه شما چرا متوجه نمیشین من چه کتابی درباره سعدی بخونم که سعدی رو بشناسم گفتم سعدی رو بخون تا سعدی رو بشناسی خب بعدها اتفاقا این کار کرد و باید سخنران شد و بعدها خیلی خیلی خوب صدیر شناخته بود خب عزیز من چرا تا... کتاب تهود نور نولد کرد بخونی؟ رو بخون و خودت بهتر متوجه بشید سلام مانده نباشید در کاشان کلمه شمال یعنی نسیم و باده خونک به کار میروند خب خوبه من فهمیدم که در هم این هست و پیامک که دیگه کلات اه... با سلام خدمت شما آیا این واکاوی و رمزگوشایی ها، رمز هایی که آقایی دکتر جونهیدی انجام میدن در کتابی آمده است؟ این در کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان که من سی سال پیش نوشتم، اینها اومده تا بخش تا پایان فریدون شما اون رو بخونید زندگی و مهاجرت آریاییان اتفاقا کتاب ما رو زیاد این سازمان های پخش پخش نمی کنند. بازم اگر خواستید از بنیاد نیشابور می برای شما خواهند فرستاد منطقه در این سی سال من یک کوشش خیلی بلند کردم تا این کتاب رو گسترده بکنم این کتاب به نام داستان ایران بر بنیاد گفتارهای ایرانی آماده چاپ به نمایشگاه کتاب نمیرسه. اما امید دارم که به تیر ماه برسه به دست فرزندان ایران انشالله درود بر استاد جنیدی و آقای هدایتی لطف برید من کفتن که خودم میگم آقای شما بله بوندم لطف دارید آیا کتابی مشابه شاهنامه هست آقای مهدی عزیز از ساری درود بر شما من فقط باید یه کارو کنم که مثلا هنجر خودمو بشکفم خوندیدید تا شما متعجب بشیم که نه هیچ کتابی در جهان مشابه شاهنامه نیست میخواستم خواستم بپرسم به هر حال هر آدمی یه خوبتی داره برای که فردوسی همیشه در شاهنامه یک سری افراد و مثل زهاد خیلی بد می مثلا یک آدمی مثل رسم و تهلوان همیشگی می عرفان ارفان علاجی کور هستم از ده بار. درود بر شما و درود به خوزستان خوزستان و سرفراز فردوسی این اگه نداره این کتاب ترجمه شده من بارها گفتم این نوشته باستانی است و زهحاد نماد پادشاهی باول نخستین بر ایرانه که همرا باث هم و کشتار و سوختار و دروغ و کجی بود بنابراین کارنامه و برنامه زندگی اونها همه کجی و نارواستی و سیاهی و تباهی بود این است که در ترجمه ما غیر از این نمیتونیم ببینیم وقتی که اونها اینقدر جوانان ایرانی ایران رو میکشتن تا کشتارها رو آتش می‌بافتن و ها و ها رو از بین می‌بردند و غیر از تباهی برای ایران نمیخواستن چطور میشه که ما از اونها تمجید بکنیم یعنی چطور میشه که تاریخ ایران از اونها تمجید کرده باشه و وقتی که فدوسی تن و جان و روانش به ایمانش در راه ایران هست چطور میشه که انسان از او حمایت نکنه ما خیلی از این کسان دیگر داشتیم که همواره از اونها، مثلا از اون یه پلبانه داشتیم به نام پوریای ولی. شما میبینید که هیچ کس درباره پوریای ولی بدی نگفته و یه پهلوانی اخیرا داشتیم به نام قام تختی همه ایران او رو دوست داشتن. او هیچ بدی به هیچ کس نکرد و رستم که پهلوان پهلوانان هست همیشه مورد ستایش شاهنامه بوده دوستی هم اینها رو ترجمه کرده. با سلام. خدمت آقای دکتر دی. چرا در جامعه الان الان ما اهمیتی برای شاهنامه و گذشته پرشور ما قائل نیستن در کتاب درسی نیست همینطور در جامعه ما با توجه به اینکه شبکه فرهنگ همغمش رو داشته برای فرهنگ کشورمون ما قائل هستیم و این برنامه اصلا برای این هستش با حضور آقای دکتر دی. این هست منتها اون چیزی که شما میگید درسته ما خودمون فکر میکنم دور شده چرا این طوری؟ این بازم, بازم این سوالی هست باور نمی کنید در طول هفته من همش به این فکر میکنم محب. که چرا اون اتفاق که ما میخوایم نمیافت چرا جلسات شاهنامه خانی نداریم چرا این اتفاق در جامعه ما نمیافته که مردم همه غمشون بشه با با روزی بخونن روزی دو بیت از شاهنامه یا کتب دیگه اصلا خواندن کتاب هی آمارها دارن نمیشه کتابم نزدیکه هی آمارها در مورد کتاب خوندن مردم ایران دارن میگن که دقیق راست نمیدونم آمارها رو حالا میدن میگن من بیشتر منظورم اگه فرقی کنم همین باشه من از از پایان سخن شما بگیرم اولاً من به جوانان ایران موجیدم نترسید این آمارایی که میدن اینها روی کتابهای در حقیقت تحقیقی نداره اروپایی‌ها که کتاب زیاد میخوان همه کتابهای خب و دوستها دو سوم اینا من جنایتو رو میخونن که میبینید ساعت مطالعه زیاد میره میره بالا مثلا توی مترو که میشینن کتاب اونجاست اینا رو میخونن کتاب تحقیقی میخونن من که در زمینه کار ایران شناسی میبینم اگر در اروپا در یه کاری انجام میگیره در 500 نسخه یک کتاب مثلا انجام میدن من خودم در سال 1360 1669 اقدام کرده بودم چاپ شد که 72 به عرضه رسید بزرگترین فرهنگ ابستای ایران به زبان فارسی رو و ینگلیسی البته به یاری روان شد ااسرائان بهرامی و من این کتاب رو چاپ کردیم و از 722 سال 72 ۲ که به عرضزه شد تا کنون 2500 دوره چارژلی که در 2000 ۷ است به کتاب خیلی سنگینی است به ارزش شده به مردم ایران و من حساب کردم در هر سه روز دو کتاب دو دو دوره فرهنگ عبرت رفته این نشانه آگاهی جوانان ایرانه نه ترسید شما دارید مطالعه میکنید مطالعه خوب دارید میکنید و اروپا دارن داستان رمان میخونن و جنایت و کنگستری دارن میخونن این یکی دومی که خب این تلاشی که من خودم از سی سال پیش آغاز کردم کم کم داره به نتیجه میرسه ببینید الان در من بنگاه بیست ایشابور 27 سال ما جلسات شامنامه خواهیم داریم روزای شنبه هست شما هم بیا باید این کار کرد همین ای که زده بر دل جان تو همین امیدوارم که بر دل جان همه بزنه و ایرانیان بدونه که باید وقت خودشون رو رو شامنامه و با افتخار شامنامه رو بخونن می‌خوام که معصوم شما کامل برنامه پنجره‌ای رو به به خصوص استاد جنیدی. من از استاد سوال داشتم که استاد علت تبدیل اساطیر و هنر حماسی به اساطیر و هنر عرفانی چیه؟ مثلا چرا سیمر و اسفندیار در اساطیر حماسی به اساطیر عرفانی تبدیل میشن؟ خسروانی هستم از راست کامتون با تشکر. این کنم آقای از بود آقای خوصدبانی از خاک ایران هستند. ولی بله این نشانه گرایش ایران به فرهنگ کوهنش نمیخواد سیمور رو از از ببه که در دا داستان های گذشته بوده مجددن در داستان ارفانی دو مرتبه خودشونشون میده و گرایشیست که ایرانیان به گذشته خودشون دارن این خوبه دکتر زنهجی تشکر می کنم از زحمات ایشون در راستای ایران شناسی کشیدن یه سوال داشتم خدمت ایشان خواستم ببینم که در مورد تاریخ کرمانشاه یعنی زمانی که شاهنامه سراییده شده و در مورد کلمه هورامان یا هورامانات اگه ایشان چیزی میدونن توضیح بدن متشکرم ممنون خلاصه‌عملی از کرمانشاه خدا میکنم اون رود و کوه و دشت اورامان اون سرزمین زیبای مردانگیز اون سرزمینی که دختران ایرانی در اونجا دارن با کوشش ایران را آباد میکنن و درباره اورمان در, در شانومه مطلب هستمون تا با رمز و اشاره که من اونو در داستان ایران بختر دوم خواهم گفت و شما باید در این باره اندکی درنگ ببرزید درقیه که گفتید در من هم به دست شما زده شد جوانی 19 ساله هستم ده 910 شماره وسط رو نمیخونم پنج. بله خوبه همین خوبه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نامش <نامشه> نگفته؟ نه <تصفيق> نه نا نا نامش نگفته جوانی 19 ساله درود بر ایرانیان در شرق خوزستان. از کلمه چاف به معنای خوراک زهر استفاده می شود این کلمه تا چه حد است. آیا ریشه های نمید شاه نامهی داره منظور در قروسان چاشته میگن چاشت می شه تبدیل به سه شده بعد ته پایانشم افتاده درسته ریشه قدیمی داره منطقه این جوان 19 ساله که اینجا گفت من یک ای از یک جوانی به نام پرهام به من رسیده که دانش, دانش آموزه و خیلی چیفتنگیزه که در سن دانش آموزی و برنامههای ما رو که گوش کرده خانواده خودش و مادر و پدر راضی کردند که 25 پنجم اسفند سال گذشته که هزاره پایان افتن بوده اون از سیران حرکت کنند برن به در حقت به بارگاه فردوسی و نامه خیلی خوب برای من نوشته من اونزارم که همه جوانان در همین سنین و پایین بلکه بیدار بشن و این بر جانشون این آتشی مهده هر چی بیشتر و, و برتر باشه بیشتر آرامش برای انسان ما سلام خدمت استاد جنیدی میشه ریشه و دلیل کاربردی کلمه ایران را شرح دهید آقای اسمشون رو نمیتونم بخونم درست از یا هستن این گفتید من میخوام دوباره بگید در منزه این واژه در اوستاس عیریه یا عدهیری یعنی فرود یعنی پایین و بعد در پهلوی شد عدر و در پهلوی شد ایر و بعد یعنی فرود پایین بعد با پیشوند حج در عوستا بوده هچه. هچا ادعیری یعنی از زیر بعد در پرویش شد در یعنی از زیر یعنی زیر هستن به طور کلی بعد شد از زیر میبینیم که بعد با پر زور و همدیگه رو برو هستن اما ایر یعنی فرو ایران یعنی فروتنان ریشه واجه ایران یعنی فروتنان سرزمین فروتنان یعنی کسانی که انقدر آزاده بودند که با داشتن همه اسباب و بزرگی و خدرت و توان همواره فروتن بودند و ما هنوز هم آثار اینو داریم که به هم میرسیم دست و سینه میداریم و به نماز نماز بریم یعنی تحجیم میکنیم این فروتنیش همه جا در حقیقت پسندیده بوده و فرهنگ ایران اون رو همواره تجبیز کرده <تصفيق> با سلام خدمت زنمای دکتور جنهیدی و زنمای هدایتی موزیدی بسیار طبانه در تاید فرمایشات زنمای دکتر جنهیدی یک منطقی و یک شهر خواستانی توی خودستان هست شهر بسفول که هنوز مردم اونجا به اون لحجه ها به اون گویش های محلی این چو قبل از اسلام هنوز بعضی کلمات رو میگن مثلا به این مراسم که برای تشی و تفین و یا صدوما هفت باشه که در قاضی میگفتند پرسه، هنوز اونجا میتونم پرس. خیلی از کنمای معروف پارسی هنوز تو این شهر در میشه. حتما یه دکتر با این شهر و با این لحظه آشنایی دارن. یه سال و دکتر داشتم حتما قبول دارن چون چه و سی پنج سال در یک نشست نشسته، گوشه گوشین نشسته و این شاهنامه رو نوشته واقعا آدم والمرف تو مخیل آدم نمیگن. این همه اطلاعاتی که یک مرد در هر رابطه داره، در رابطه با جنگ داره، سیاست داره، نظام داره، در رابطه با آداب و رسوم داره، در رابطه با اجتماع داره، آیا واقعا این تو، بقول مرمو این قوال قبولی که فردو دو سی پنج سال، یا ستی سال بقوله این اشعاری که این بقول مرمو این که در این گفته، در شما با درود بر اون پل باستانی دستفول که سرفراز ایستاده و نشون میده که از اون پل آهانی خیلی خیلی بهتره و من خودم دیدم که تریلی از روشت میشه گویا که بعدن قرار شد که دیگه نگذارن این کار انجام بگیره ولی هنوز چند هزار سال این پل ایستاده و تواناست و من فردا بامداد آزم دستم در باری شانومه سخنانه دارم در اونجا از این شنونده گرامی خواهش که ترتیب بدن که ببینن در کدام سال هم هست فردا خدمتشون برسند. بله این واجه پرسند که میگید در کردستان پرس میگن در کرمان پرسه میگن و هنوز در خیلی از جه ها رواج و در خوزستان خوزستان بخش بسیار مهم و باستانی از ایران که دوید تصورم یکی از شهرهای خوب خودستانه شاد باشی آره فرمودید شما ب... ب... فرمود. بیرون قبل هدی که برانو شروعای دکتر فرمودن که من دارم فردا میرم دستفور زودم گفتید میرم زودم بر میگردم صبح بعد برم ساعت یازده گویا سخن را نه نه نه ببخشید من فردا شهر کرد میرم دستفور قرار شد روزه به نظرم هیچده ایشون اگه پیگوه باشه متوجه میشه که چه زوانه شهر یکی از پیامک ها من خوندم در مورد اهمیت شاهناه و چرا در جامعه که از من عرض کردم پیدر ورنامی در شواکه فرهنگ اصلا هم موقعا برای این هست که معذفی بشه این آثار باستان آثار ادبی کشورمون این دوستمون برای ما دوباره پیامک فرستاده که منظورم این هستش که بعد سلام مجدد منظور من از پیامی که فرستاده شده این بود که ما نباید از های درسی در شاهنامه شروع کنیم تا از بچگی آن در کتاب‌های درسی ما نباید از از شاهنامه بنویسن تا از بچگی آشنا بشیم با شاهنامه این چیزی من تعریف خوندم بله این چنین <تصفيق> هست به نظر من اینه من که زمان خودم رو گذاشتم و ضمن از اون تلفن باستانی هم که 30 سال پیش بود بله این همه جن... جهان می‌دونن و فیدوسی ترجمان و آگاه نوشته های پیشینیان بود خب در همی زمانم نظیر داره خب من شانومه رو چند سال کار کردم من هم سی سال کار کردم شانومه من منو بخونید می‌بینید که سرشار از داده های تاریخی و ادبی و دانشی نیاکان و باستانه و میشه اگر کسی دل و جان به سپاره به مهر ایران میتونه که تمام زندگیش رو و پای ایران بریزه و بحره بحر بحر بشه خودش اول خودش بحره بحر بشه بعد به دیگران بحره برسه ما در برنامه امروز تلفن ها مونده تعداد پیامک ها مونده هست. اها شما ببینید چند تا بگیید که چند تا آه... دکتر بعد بهش دونه دونه زمانم نداری <تصفح> بلده. <تصفح> بلده. خیلی است ولی <تصفح> <تصفح> من این طور که بیشتر شده بلده. خیلی حالا دقیقاً بگیم نمیدونم اما برای با همه کسانی که پیو میکردید حالا جوابشون رو ان در فرصت های دی بازم برنامه‌ی برنامه باشن در هفته وند <تصفح> یک به شب هفته وند در ساعت نه و شب تا ساعت 11 شب آهای دکتر جنیدی حتما حضور دارند و حتما حسمند... ما می‌خواستیم درباره کیومرث صحبت کنیم هفته, هفته آینده بود در این باره صحبت خواهیم کرد و همکاران ما در برنامه امشب شب که کار گروهی هست سکر از مصاحبات دلبری تهیه کننده برنامه هستند سکر سویلرضایی هماهنگی برنامه هستند صداورداران آقای آزادفر و خانم نشیبا بودند ارتباطات آقایان باغری و حسینی هماهنگی پخش آقایان ابراهیمی و مظاهری سردویر و مجری برنامه همی جزضا هدایتی راد با سپاس از میهمان اجمند برنامه آقای دکتر فریدون جنیدی سپاسگزارم از شما دکتر جنیدی دست شما درد نکنه. شاد باشید من خویشکاری خودم میدونم برای خدمت به فرهنگی رو و فردا شب به ساعت نهونیم شب آقای دکتر قطب صادقی درباره هنر و آینهای سرزمینمون صحبت میکنند